بسم الله الرحمن الرحیم بنامه خداوند بی اندازه مکربان نهایت باره بگمان مؤمنان رستگار شدند آنهایی که در نماز خیش فروتند آنهایی که سخن بیهوده اعراض میکنند. آنهایی که زکات را ادا می کنند آنهایی که فروج خیش را حفظ می دارند مگر برهمسران یا کنیزان خیش که با آمیزش جنسی با ایشان مورد ملامت قرار نمی گیرند کسانی که غیر از این راه دیگری را بجویند پس ایشانم تجاوزکار و آنهایی که امانات و عهد خیش را رعایت می کنند آنهایی که از نمازهای خیش محافظت می کنند هم ایشانند وارسانی واقعی کسانی که بهشت را میراث برده در آنجا جودانا به سر برند، انسان را از غصاهه از گل پس او را به حیث نطفه در قرارگاه مطمئن رحم قرار دادی. سپس آن نطفه را خون بست بس ساختید پس آن خونی وسته را گوشت پاره باز آن گوشت فاره را به صورت استخان در پس ها را با گوشت پوشانیدی، بعد از آن با او آفرینش دیگری بخشیده بس بزرگ است خدایی که بهترین آفرین دگاه است، پس بیگمان بعد از آن شما مردنی هستید باز بیگمان در روز قیامت برانگیخته میشید. و حقا که بر بالای شما هفت راهیان یعنی طبقه را آفریدیم و ما از جهانی که آن را آفریده ایم غافل نبودیم و آب را از آسمان به لازم نازل کردیم و آن را در زمین جای دادیم و بیگمان به با ازبین بین بردن آن قادره پس به وسیله آن برای شما باهای از درخت فرما و انگور رو یعنی در این باغ ها میوه های فراوانی برای شما وجود دارد و از آن میخورید و نیز درخت از کوه سینا بیرون می آید و با روغن و نانخورش برای خورندگان می روید و بگمان در چارپایان نیز برای شما ماهی عبرت است از آنچه در شکمه هایشان است از شیر شما را می نوشنید. و در آن برای شما منافع بسیار است، از گوشت آنها می خورید و برچارفایان و برکشتی ها سوار می شون. و ما بگمان نور را به سوی قوم او فرستادیم، پس به آنها گفت ای قوم من، خدا را بپرستید، جز او هیچ معبودی ندارید، پس آیا از او نمی ترسید؟ پس کلان شرندگان قوم او که کافر شده بودند گفتند، او نیست مگر بشری مثل شما که می خواهد بر شما برتری جوید، و اگر خدا میخواست بیگمان فرشتگان را با حیث پیانبر میفرستاد ما هرگز این چیزی را که او میگوید از نیاکان خیش نشینده نیست او مگر مردی که به جنون مطلع شده پس تا مدتی با او انتظار بکش نوح گفت پروردگارا مرا در برابر تکذیب ایشان کمک کن پس با وای وحیه کردیم که کشتی را زیر نظر ما و وایه ما بسازد چون امر ما فرارسید و آب از تنور جوشید از هر چیز جوره های نر و مادرها و نیز خانواده خود را در کشتی بردار مگر آنهایی که قبلا وعده حلاکتشان داده شده است و درباره کسانی که ستم کردند با من گفتگو مکن که ایشان غرق شاینده و هنگامی که تو و همراهانت در کشتی جا بجا شدید پس بگو ستایش مرد بود آیرا ذاتی که ما را از قوم ستمگار نجات پخشید و بگو پروردگارا مرا به جای با برکت فرودا و تو ذاتی هستی که بشایستترین شید وی ما را فرود نیاری. بگو در این داستان نشانه است و ما واقعا شما را آزمایش کنیم سپس بعد از ایشان دوره دیگری به وجود آوردیم پس در میانشان رسولی را از خودشان سرستادیم تا به ایشان ابلاغ کند که خدا را بپرستید جز او برای شما خدایی نیست آیا از او نمی ترسید؟ کلان قوم او که کافر شده بودند و از لقای آخرت این کار داشتند و آنهایی که برایشان در زندگی دنیا رفاه بخشوده بودیم گفتند این نیست جز بشری مثل شما آنچه شما می خورید می خورد و از آنچه شما می نوشید و اگر از بشری مثل خود فرمان برید مسلمان شما در این حال زیانکار خواهید بود آیا به با شما وعده می دهد که چون مردید و خاک و استخان شدید بگمان باری دیگر از قبرها براورده می هیحات هیهات هیهات از آنچه با شما وعده داده می شود برای ما جز این زندگی دنیا هیچ چیزی دیگری نیست می میریم و زنده می و ما هرگز برانگیخته نمی شن نیست این مگر مردی که بر خدا به دروغ تحمت بسته است و ما به او ایمان آوردنی نیستیم پیانبر گفت پروردگارا مرا در برابر تکذیبشان کمک کن خداوند گفت بزودی زودی ایمان می شون. پس ایشان را سیحی به حق شروع گرفت و ما ایشان را همچون خاشاک روی آب پس برای قوم ستمگر از مرحمت خدا دوری بادید. سپس بعد از ایشان دورهای دیگری را به وجود آوردید. هیچ قومی نمی تواند بر برمی غیاد خیش سقط دوید یا آن را به تأخیر اندازد. سپس پیامبران خیش را پیاپی فرستادید هرباری که به قوم پیامبرشان آمد او را تکذیب کردند پس ما بعضی را از پی بعضی دیگری آوردیم و ایشان را افسانه ساختیم پس دوری از مرحمت خداوند باد قومی را که ایمان نمی آورند سپس موسا و برادرش هارون را با آیات خیش حجت آشکار فرستادی به سوی فرعان و کلان شلندگان قوم او ولی فرعانیان تکبر کردن و ایشان قوم برتری جو بودند گفتند آیا با دو نفر از افراد و شعر همانند خود ایمان آوریم در حالی که قوم ایشان ما را میپرستند پس فرعانیان این دو بر را تکذیب کردند و سرانجام انجام همه هلاک شدند بگمان به موسا کتاب یعنی تورات را دادیم تا باشد که ایشان هدایت شد و ما پسر مریم و مادرش را نشانه گردانیدیم و ایشان را در سرزمین بلند دارای استقرار و آب روان جای دادیم ای پیامران از خوردنی های پاکیزت بخورید و عملی انجام دهید بگمان من به آنچه انجام میدهید آگاه هم و بگمان این امت شما است، امت یک باچه و من پرولیگار شمایم لذا از من به نه کسی دیگر اما ایشان وحدت خیش را حفظ نکرده کار خود را در بین خیش و پرابندگی کشانیده هر حزبی با آنچه نزد خودشان است شادمانم بدون آنکه وسط واسط نظر داشته حقایق را فیرگی کند پس ایشان را به من غفلتشان بگذار تا لحظه مشخص فرارسد. است آیا ایشان میپندارند که با آنچه از مال و اولاد که به ایشان کمک خوبی خوبیها را به ایشان به سرعت انایت می نه خیلی ایشان نمیدارند. بگوام کسانی که از ترس پروردگار خیش بیمناکند و آنانی که با آیات پروردگار خیش ایمان دارند و آنانی که با پروردگار خیش نمی آورند و آنان که چون میدهند آنچه را میدهند دلهایشان ترس است از اینکه که به پرواردگار خیش باز می هم ایشانند که در نیکویی سرعت بخش میدهند و ایشان به سوی آن سفقت میجوند و ما هیچ کس را جز به قدر طاقت او مکنف نمیسازید و نزد ما است که به حق سخن می‌گوید و بر ایشان ظالم نمیشوند ولی هایشان از نامه اعمال در غفلت است و ایشان اعمال دیگری جز این دارند که به آن پیوسته عمل میکنند. در زمانی که آسود حالان ایشان را به عذاب بکشنیم در آن وقت است که ایشان فریاد بکشن و ایشان گفته می شود امروز فریاد نکشی یقینا از جانب ما مدد نمی باید دارید که آیات های من به شما خوانده می شود و شما بر پاشنهای تیش و عقب برمیگشتید گشتید و از آن احراز می کردید تکبر کنان در برابر آن در جلسات شبانه دور از دیگران به می کردید آیا ایشان در این گفتار یعنی گفتار خدا تفکر نکرده یا به ایشان چیزی آمده که بر های پیشینشان نیامده بود ام لم پیانبری خیش را شناختند که از او کار میورزند؟ یا آیا میگویند که او دیوانه است؟ نخیر به ایشان سخن حق را آورده است ولی اکثر از سخن حق کراحت دارد و اگر حق از حوثهایشان تروی کنند یقیناً آسمانها و زمین و آنچه در میان آنهاست خواست میشوند بلکه حقیقت این است که ما با ایشان پند ایشان را فرستادیم اما اکثر ایشان از پند شروع رو گداند. یا اینکه تو از ایشان پرداشی می جویی پس مزد پروردگارت بهتر است و او بهترین روزی دهندگان است و بگمان تو ایشان را برای راست فرا می خالی. و کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند، بیگمان از آن راه راست منحرفن و اگر بر ایشان ره کنیم، و اندوهی را که بر ایشان عارض شده رفع نمائین باز هم در سرکشی خیش با سرگردانی اصرار می ورسن و بگمان ما ایشان را به عذاب گرفتار کردیم با این هم به پرودگار خیش تندیهی نکردن و تزرور نورسیدن تا چون بر ایشان دره از عذاب شدید را کشودیم ناگهان ناامید شد. و اوست که برای شما گوش و چشم و دل ارزانی کرد اما کمتر شکل میبرید و اوست که شما را در زمین آفرید، و باری دیگر با سوی او می میشند و اوست که زنده می کند و میمیراند و آمد و شده شب و روز از آن اوست آیا نمی فهمید؟ اما بلعکس ایشان چیزهایی گفتند که پیشینیانشان نیم کردند گفتند گفتن آیا چون مردیم و خاک و استخان شدیم آیا بعد از آن بر انگیخته خواهیم شد؟ بیگمان به ما و پدران ما قبل از این این وعده داده شده این نیست مگر افصانه های بگو زمین و آنچه در آن است از آن کیست اگر شما می دانید خواهند گفت از آن خداوند است بگو پس آیا پن نمیگیری بگو کیست پروردگار آسمانهای هفتگانه و پروردگار عرش هزیم خواهند گفت از آن خدااست بگو پس آیا نمی ترسی بگو کیست که سلطنت هر چیز به دست اوست و اوست که پناه می دهد ولی خود او به پناه دادن نیازی ندارد اگر می دانید خواهند گفت این اوصاف از آن خداست بگو از کجا فریب داده می شد بلکه حقیقت این است که ما برای ایشان حق را آوردهیم و حقا که ایشان درو بیان است. خداوند هرگز فرزند نگرفته است و نه با وی خدای دیگری است. اگر چنین می بود هر معبود چیزی را که آفریده بود می گرفت و یکی بردیگر زبردستی می نبود. منزه تو خدا از آنچه مشتکان وصل می کند. او دانای پنهان و آشکار است پس برتر است از اینکه که با او شریک می آخرد. بگو ای پروردگار من اگر بنا باشد آنچه را ایشان وعید می شوند به من نشان دیهی پس ای پروردگار من مرا در نیان مردم سپنگار قرار منه و ما یقینا به این قادریم که آنچه وعده می دهیم به تو نشان با آنچه بهتر است به را دفع کن ما به آنچه ایشان توصیف می کنند خوب آگاهی و بگو پروردگار من از وسوسه های شیاطین با تو پناه میگیرم ای پروردگار من و نیز از حضور و نزدیکی ایشان با تو پناه می برم. آنها همچنان به راه غلط دوام خواهند داد تا چون به یکی ایشان مرگ برسد میگوید ای پروردگار من مرا به زندگی بازگردم شاید در عوض آنچه ترک کردم عمل صالح انجام ده هم. با او می چنین انچنین نیست بگمان این سخنیست که او به زبان آورده است و از ورای ایشان بین زندگی دنیا و قیامت است تا روزی که برانگیخته می شود سپس چون در سور دمیده شود آن روز میان ایشان رابطه نصف در نظر نخواهد بود و از یک دیگر کمک نمی خواهد. پس کسانی که وزن حسناتشان سنگین شد هم ایشانند رستداد و کسانی که وزن حسناتشان سبک است هم ایشانند که خیشتن را زیان من ساخته در دوزخ همیشه خواهند روحایشان را آتش می و ایشان در آن چهره در هم کشیده دارد و ایشان گفته می شود آیا با شما آیه های من خوانده نشده بود و شما آن را تکثیب می کردید می گویند پروردگار ما شقاوت ما بر ما غلبه کرده و ما قومی گمراهی بودیم پروردگار ما ما را از آن بیرون را پس اگر ما همان اعمال را تکرار کردیم در آن صورت واقعا ستمگار می باشیم خداوند می گوید دور شوید در آن و با من سخن ما از بندگان من واقعا گروهی بودند که می گفتند که پروردگار ما ما ایمان آوردیم پس ما را بیامرز بر ما رحم کن و تو بهترینی رحم کنندگانی اما شما ایشان را به تمسخر گرفتید به حدی که ایشان به این حالت خود شما را از یاد من غافل کردند و به حالتی بودید که به ایشان می خلیدید. وکنون من ایشان را در برابر صبرشان پاداش دادم و حقا که هم ایشانند پیروزمند خداوند گفت چی مدت در زمین به حساب سال درنگ کردید؟ گفتن یک روز یا از روز درنگ کردید از شمارندگان بپرس خداوند گفت درنگ نکردید مگر اندکی احکاش میدانستی پس آیا که داشته که شما را بیهوده و فریده و شما نزد ما بازگرداندن نمی شوید؟ پس برتر از خداوند پادشاه برحق جز او معبودی نیست پروردگار عرش کریم و هر که با خداوند معبود دیگر را بخواند و مسلمان به این کار خیش دلیل ندارد پس به اومان حساب او نزد فروردگار اوست و اکار فرآن هرگز در نمیشه. و بگو فروردگارم مرا بیاموزد و بر من راهم کن و تو به حسینی